اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا خافذا مقائدا ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة السلام عليك يا مولانا يا فاطمة الزهراء السلام عليكم يا أهل بيت النبواة سلام استدلالاتی بودیم که به آیات قرآن شده بود در مورد وحدت شخصی وجود به سوره مبارک توحید رسیدیم عرض شد که در این سوره مبارک هم به کلمه احد تمسک کرده برای اثبات وحدت شخصی وجوده و هم به کلمه سمد در مورد کلمه احد بحثی رو مختصران به محضر عزیزان ارز کردیم در مورد کلمی سمد اینها استدلالی رو که به این آیه شریف الله السمد کرده کردهاند برای اثبات وحدت شخصی وجود به این نف هستش که گفته اند سمد بنابر بعضی از روایات به معنای لا لَا جَوْفَلَهْ آمده کسی که جوفی ندارد بعد اینها الذي لا جوف رو به این معنا کردند لا جوف یعنی چیزی و کسی که میانتوهی نیست وسطش خالی نیست و خداوند متعال با این تبیین روایی اجوف و تو خالی و درونتهی نیست خب طبعا اینها به این نفع این رو معنا کردن که وقتی خداوند متعال تو خالی نیست پس خداوند متعال تو پر است و معنای دقیق این کلمه این است که هیچ موتنی از خداوند متعال خالی نیست همه جا و همه چیز خود خداوند متعال هست و هیچ جایی و هیچ چیزی را شود فرض کرد که اونجا وجود خداوند متعال نباشد معنای تو خالی نبودن و معنای تو پر بودن به این نفه شاید بشود ساده تر بیان کرد که همه چیز درون خداوند متعال هستند همه چیز اینها وجودشون وجود خداست و خداوند متعال همه چیز رو به حسب وجودش دربر گرفته همه درون خدا هستند همه جزئی از خدا و خدا هستند به این معنا. در نقد این استدلال خب به نکاتی ان الله اشاره می‌کنیم اولا اینکه این, این معنا در بعضی از روایات آمده مانند این روایت شیخ صدوق که هم در کتاب توحید خودشون نقل کردند و هم در کتاب معان الاخبار که حدسنا ابی رحمه الله قال حدثني سعد بن عبدالله قال حدثنا محمد بن یس بن عبید ان یوسف بن که همه اینا ثبثند ابن ربیع ابن مسلم قال سمعت ابو الحسن علیه السلام شنیدم از آقا ابو الحسن علیه السلام و عن الصمد در حالی که از کلمه صمد از حضرت سؤال شده بود حضرت فرمودن فقال الصمد الذي لا جوف له آن است که شکم ندارد جوف ندارد خب این معنایی که در بعضی از رباهیات آمده خیلی واضح است که به هیچ نحوی ربطی به وحدت شخصی وجود ندارد و اینی که خداوند متعال جوف ندارد شکم ندارد یا حتی به این نه معنا بکنیم که خداوند متعال میان نیست، نیست خالی نیست مثل انسان ها و امور دیگری و حیوانات و موجودات زندهی که اینها شکمی دارند که در اون شکم غذا رو می اون تو خالی هست محفظه خالی هست خداوند متعال این گونه نیست خب خیلی واضح هست که این کلام دارد رد, رد تشبیه رو می کند و دارد تشبیه کردن خداوند متعال به مخلوقات رو این کلام رد میکند و اینی که خداوند متعال شکم ندارد، اینی که خداوند متعال تو خالی نیست، این هیچ ربطی نمیتواند داشته باشد به اینکه همه چیز خداست، همه درون خدا هستند و هیچ چیزی غیر از خدا نیست. خب این هیچ ربطی به این نمیتواند داشته باشد. رضا روایاتی هم در طبیعین همین کلام از این محسومین علیه مسلام رسیده جناب ابن شعبه حرانی صاحب کتاب شریف حفول قولشون روایتی رو از باود ابن القاسم که همون ابی حاشم جعفری معروف هست که جلسه گذشته مقداری از جلالت قدر ایشون رو بیان کردیم نقل میکنه که علا ظاهر از شد که ایشون صاحب کتاب است و ایشون هم مشهور هست و این نقل‌های بی واسطه دلالت بر نقل از خود کتاب می‌کند ایشون از جناب داوود ابن القاسم نقل می‌کند که سألتُه عن الصمد فقال عليه السلام حضرت فرمودن وقتی که از سم سمد از حضرت سوال پرسیدیم حضرت فرمودن الذي لا له صمد آن چیزی است که ناف ندارد گفتت که انهم ان الذی لا جوف له این قوم مردم اینها میگویند که صمد آن است که جوفی ندارد حق علی السلام کل ذی جوف له سوره هر چیزی که شکم دارد خب اون له سوره اون نافی دارد ناف این معنا که یک مرکزی دارد حالا بیان دقیقتر تر سره خب در کتب لغت آمده که حالا ما و بیان سادهی اون رو کردیم خب معلوم است که اینجا حضرت با این بیانی که میگو میکنن که خداوند متعال ناف ندارد خداوند متعال شکم ندارد هر چیزی که شکم دارد طبعا این شکم یک مرکزی دارد یک نافی دارد با این بیان طبعا حضرت دارند نفی تشبیه مخلوقات رو از خداوند متعال میکنند بیان ساده همین و تبیین ساده از لاجعوف رو حضرت کرده که اینطور که شما در مخلوقات یک شکمی رو میبینید که اون شکم هم نافی دارد مثلا در حالت جنینی از مادر این گونه تغذیه میکنند خداوند متعال رو این گونه تصور و تصور نکنید کما اینکه بعضی از یهود در کتب خودشون خداوند متعال رو موجود جسمانی شبیه انسان فرض کردند چیزی که شکم دارد، تبلف دارد، خداوند متعال این گونه نیست. بیان خیلی بیان واضحی است در نفی تشبیه و حضرت هم لا جوف له رو به همین معنا گرفتند. و نفی شکمیت گرفتند و حالا معنای تو خالی بودن یا تو پر بودن هم نکردند که البته ارز کردیم که اون معنا رو هم بکنیم باز هم ربطی ندارد اما خب لا و له یعنی شکم ندارد باز روایت دیگری رو مرحوم فرات کوفی نقل میکنه به سند بسیار مفصل خودشون از ابن عباس که میگوید قال ان قراشان سأل نبی صلی الله علیه و آله علی و قراش از رسول خدا سوال پرسیدند که بعضی از افراد هم در جمله این سوال کنندگان بودند من هم جو بیروبنو متئم و ابو جهل و حشام و رعصا من قراش بعضی از رؤاسای قراش هم بودند اینها گفتند یا محمد اخبرنا ربک به ما خبر بده از پروردگار خودت من ایش ای این هوه پروردگارت از چه چی چیزی است جنسش از چه چی چیز است من خشبن از چوب است ام النحاسن نحاس رو میتونیم با معنای مس بگیم از مس است ام من حدیدن یا از آهن است قالت اليهود حضرت بله در ادامه اینها میگن که وقتی که سوال میپرسن که پروردگارشون از چه جنسی است ادامه میدهند که یهود میگوین انه قد اونزلنعه تو فالتورات صفت پروردگارشون و توصیف پروردگارشون در تورات آمده از کردم اونها به صورت یک انسان به صورت یک موجود جسمانی کسی که شکم دارد خداوند متعال را توصیف می‌کنند فاخبرنا عن از خبر بده به ما از اون پروردگار از فنزر الله تعالی و الا نبی صلی الله علیه و آله قل هو الله احد الله الصمد یعنی الصمد الذي لا جوف له خداوند متعال این الله الصمد رو در این بیان نازل کرد که اونها خداوند متعال رو از جنسی تصور کردن چیزی که مثل حدید روی دارد داخلی دارد زیدی دارد یا مثل تورات که خداوند متعال رو انسانی فرض کرده اند که سایر دادارای اجزای انسانی است خداوند متعال الله الصمد رو نازل کرد یعنی الصمد لا آن است که جوفی ندارد یعنی این نسبتی که شما به خداوند متعال می دهید که از این مواد باشد از چوب و آهن باشد که اینها دارای ابعاد هستند اینها ظاهر و باطن دارند روی دارند شکمی دارند داخلی دارند زیری دارند خداوند متعال دارای عباد نیست یا اینی که یهود خداوند متعال رو انسانی دارای شکم مثل سایر انسان تصور کردن خداوند متعال این گونه نیست لذا خوب از این روایت هم برمی که این کلام در نفی تشبیه آمده است کسان دیگری حتی از قائلین به بحث شخصی وجود هم اینها از این روایت این معنا رو نفهمیدند که یعنی همه چیز خداست یعنی هیچ موتنی از خدا حالی نیز همه درون خدا هستند. خود ملا صدرای شیرازی در شرح اصول کافی میگوید قول قوله تعالی الله سمد این کلام خداوند متحار که الله سمد رو میفرماید. فرماید قدمر را گذشت که انه سمدیه لها تفسیران خب چند خط بالاتر چند صفحه قبل ایشون بعضی از نقل ها رو در مورد سمد میاره ایشون میگه گذشت که سمد و اینکه خداوند متعال صمد است دو تا تفسیر دارد حدو ما مالا جوف له که جوفی ندارد و ثانی از سید یعنی سید که حالا اشاره میکنیم به این آقا فمعناه عل اول معناش بر همین معنای صمد بنابر اولی که لا باشد سلبی و یعنی معنای سلبی و هو اشاره تن الا نفی الماهیه حالا اینی که ما ذکر کردیم که یعنی خداوند مطال اصلا ابعاد ندارد اینی که شما درون فرض میکنید برای خداوند مطال خداوند مطال که عباد ندارد ایشون هم به این نفر گرفتن که اشارتون الان نفر ماهیه خداوند مطال اصلا ماهیت ندارد فَإِنَّ كُلَّ مَا لَهُو ماهیه هر چیزی که ماهیت دارد له جوف و باتنون یک جوف یک باطنی دارد این امور مادی که ما ماهیت رو براشون در نظر می گیریم علاوه که توپر هم باشد اما باطنی دارد خداوند متعال این گونه نیست که و باطن ندارد و حالا این کلام ناظر به این نیست که اینها معنا کردن که جوف یعنی تو خالی نیست خب حالا ناظر به این نیست که حدای شکم داشته باشد اما توفر باشد نه اصلا خدا تا شکم ندارد باطن ندارد حالا به همین معنایی هم که حتی صدرهای شیرازی کرده و کانم من جهت اعتبار ماهیتی قابلن للعدم که اگر ماهیت داشته باشه از جهت داشتن ماهیتی قابل عدم می شود و کل مالا جهت اولا اعتبار له الا الوجود المحس و, و غیر قابل للعدم هر چیزی که اعتبار توش نیست فقط وجود مهزه است این قابلیت عدم ندارد واجب الوجود من کل جهد هوا سمد الحق واجب, واجب الوجود از هر جهتی اون سمد است اون حق است هوا سمد الحق برای تفسیر ثانی که همون سید باشد یکون معنا معنی اضافی هست و کون و سید الکل که خداوند متعال سید همه هست ای مبدع الجمیع یعنی خداوند متعال مبدع جمیع هست فکن من الصفات اضافی لذا از صفات اضافیه هست و هاونا و چون آخری وچه دیگه ای رو همشون برایسممت لا جو و فله شاید بیان میکنه. یا اصلا برای برایسممت بیان می کنه و انسممتفل نغه اول مت و مسمت و الذيظی لا جو له اون مسمدی است که جوفی ندارد شاید حالا بعضی عبارات در لغت اینطور آمد مسمت و لظی اون ساکتی که جوفی ندارد. و از استحاله ها فی حقه حالا وقتی که این در حق خداوند مطال محال است فوجه حمله على الفرد المطلق باید بگیم خداوند مطال فرد مطلق است اعنی قسم میکنم از این فرد مطلق الواحد المنزه عن المثل و نظیر یعنی خداوند مطال در رتبه خالقیتش منفرد است همون معنایی که از احد کردیم خداوند مطال هیچ مثل و نزیری ندارد خب خود صدرهای شیرازی هم این معنایی که اینها از سمد و از لا جوفاله می بفهمند نفهمیده و استفاده رو نکرده و به کسان دیگری هم این رو دارند و مفصل از این بحثا لذا معلوم شد که این لا جوفاله به هیچ نحوه حتی با تعویلات و بیانات بعیده هم قابل حمله به وحدت شخصی وجود نیست و برای بیان وحدت شخصی وجود نیست نکته دومی که ارز میکنیم اینه که خب معانی دیگری هم در روایات برای سمت ذکر شده در کافی شریف جلیه با باب تعویل و سمد حدیث شماره یک علی محمد و محمد ابن الحسن ان بن زیاد ان محمد ابن الورید و لقبه و شباب بن سیرفی ان داوود بن القاسم الجعفری که همون ابی هاشو جعفری باشه که خب اینها بنابر نظر صحیح همه اینها سقه هستند قال قلت العبی جعفر نسانی علیه السلام و آقا امام جواد علیه السلام من عرضه داشتم که جو التفداد ما سمد چیست؟ قال سید المسمود و علیه فی القلیل و سیدی که به اون پناه میبرند مورد نیاز هست اون آقا و اون سید در قلیل و در کسیر در همه چیز اون مورد نیاز هست و خود جناب مرحوم کلینی هم برای این معنایی که در این روایات آمده روایات دیگری رو هم که بیان میکنن در این معنا که معنای از المسمود هست خب شواهدی رو هم ایشون ذکر میکنن از کلمات عرب در بیان این که اونا سمد رو در این معنا استعمال کردن و استعمالات چه بسا رائجی هم داشته سمد در معنای سید و دیگری رو هم بیان کرده اند روایات که حالا من به یک روایت دیگری در این زمینه اشاره می که روایات در این زمینه متعدد هست این, رو این روایت شریف رو هم مرهوم شیخ صدوق در توحید خودشون نقل کردن قال الباغ علیه السلام حدسنی ابی زین العابدین ان ابیه الحسين بن حسين بن ال... الحسين بن علي عليه السلام پدرم امام زين العابدين از امام حسن عليه السلام نقل كردند که انه قال السمد الذي لا جوف له صمد بمعنى كسي است كه جوفي ندارد والسمد الذي قد انتهى سعدته سعدده کسی است که به نهایت درجات کمال رسیده و سمد اللذی لای اکل و لای سمت سمد اونیست که نمی خورد نمی نوشد سمد و سمد اللذی لای نام سناب سمت آن است که نمی خوابد و سمد اد لم لذی لمیزل آن است که همیشه بوده و همیشه خواهد بود که خب اینها به بنای همین بینیازی است که گاهی اوقات از این سمد اشاره شده و سمد رو به این نحو ما معناه می کنیم که در روایات هم آمده لذا جمع بحث در سوره مبارکه توحید این است که استفاده وحدت شخصی وجود از این سوره مبارکه نه تنها که با تعویلات بعیده هم قابل فهم نیست و قابل طبیل نیست بلکه بسیاری از این بیانات همینطور که در کلمه عهد آمد اینها رد وحدت شخصی وجود هم هستند یا این معنای که از کردیم از المسمود یعنی باید موجودات دیگری هم باشند سوای این موجود که به این موجود نیاز داشته باشند که اینها الحقیقه رد وحدت شخصی وجود خواهد بود جزا نه تنها که به هیچ نحوه ربطی ندارند بلکه با تعویلات بسیار بعیده هم قابل هم نیستند بلکه اینها رد وحدت وجود هم خواهند بود در اینجا مطلبی رو که ما بعد از اتمام بحث سوره مبارک حدید سوره مبارک توحید ضروری است که ما در اینجا طرح بکنیم اون کلامی است که بعضی ها اون رو ترک کردند و خواستند مقام و منزلتی رو از این کلام نسبت به عارفین به عرفان مستلح و چه بسا از این کلام استفاده بکنند و اون این که اینها گفتند که خب در بعضی از روایات آمده کما این که انشالله اشاره میکنیم آمده که خداوند متعال سوره توحید و سوره حدید رو و آیاتی از سوره حدید رو در مورد قومی در آخر الزمان که اینها متعمق هستند، اهل تعمق هستند، خداوند متعال این سوره مبارکه و بعضی از آیات حدید رو در مورد این قوم نازل کرده که چون میدونسته اون اقوام در آخر الزمان متعمق هستند، خب این سوره و اون آیات رو برای اونها نازل بکنه که اونها تعمق بکنن چون اونها اهل فهم هستند و گفته که خب متعمقین همون فلاسفه هستند متعمقین همون عارفان به ابن عربی به عرفان هستند و این حدیث شریف دارد میگوید این سوره مبارکه و اون آیات برای اینها نازل شدند که اونها اینجور فهمهایی که عرض شد رو از این آیات شریفه استفاده بکنند لذا علاوه بر این که این روایت شریف رو مجوزی برای استفاده این گونه فهمها از این آیات می کنند طبعاً مدهی رو هم برای خودشون اینها محسوب کردن این بیان شریف رو خب در نقد این کلام ما خب از این جهت اولا بحثی نداریم که خب متعمقه در این روایات فلاسف و آرفان عرفان ابن عربی و عرفان مصطلح هستند یا نه خب خیلی ما در این جنزمینه بحثی نمی کنیم و خیلی اهمیتی ندارد که بگوییم که متعمقی که در این روایات آمده همون بلاخره فلاسفه و پیروان ابن عربی و زانو زدگان در مکتب ابن عربی و هستند خب از این جهت خیلی محل بس برای ما نیست و مشکلی برای ما ایجاد نمی کند اما نکته که قابل بیان هست این است که در لسان همین روایت, همین روایت رو که انشالله از کنم و لسان سایر روایات یک مطلبی را انسان میبیند و اون این است که در لسان رایات تعمق مزموم است نممدوه و صفت متعمق در مقام زم به کار رفته است و نه تنها از این متی اراده نشده بلکه زم هم اراده شده و این اقوامی که آخر زمان خواهند آمد خب اینها چون اندیشه والایی ندارند اهل تفکر نیستند و نمیتوانند درک بکنند به اینکه اندیشه بشری محدودش تا به کجاست لذا نمیتوانند درک بکنند که در بسیاری از مباحث توحیدی در کیفیت خداوند متعال در خود خداوند متعال سوای از خلقش در اینها جای تفکر بشری نیست و اندیشه بشر به اینجا راهی ندارد چون در اینجا نفه تشبیه شده است و آن چیزی که ما تصور می کنیم اینها صفات مخلوقین هست چون این رو نمی درک بکنند اینها دوچار تعمق در این, این گونه مباحث توحیدی شدند و طبعا دوچار تحییر شدند دوچار تشبیح شدند و بعضا دوچار کفر و الهات هم شدند لذا خداوند متعال این آیات رو برای اونها نازل کرد که این رو فقط بگیرند در مباحث توحیدی و از اون تجاوز نکنند روایتی که مورد نظر اینها هست یک روایت هست که این روایت رو مرحوم کورینی در جلده یک خودشون در باب و نسبه حدیث شماره سه نقل کردند و بقیه هم از هم به همین نقل مرحوم کلینی این روایت رو نقل کردند. محمد ابن یحیی ان احمد بن محمد عن ال بن سعید ان النظر بن سووید عن آسم بن حماید قال سؤل علی ابن حسین علیه السلام ان توحید از آقا امام زین العابدین علیه السلام در مورد توحید سوال شد فقال حضرت فرمودن ان الله عز وجل خداوند متعال علم انه یکونو في آخر الزمان می آیه می دانست خداوند متعال که هستن در آخر الزمان اقواما متعمقون یه اقوامی که اینها متعمقند فانزل الله تعالی قل هو الله احد فالآیات من سورة الحدید الى قوله و هو علیمون به ذات السدور خداوند متعال سوره توحید و آیاتی از سوره حدید رو نازل کرد فمن رام و را از فقط حلک بعد اینجا حضرت تهدید می کسی که از این تجاوز بکند به درستی که هلاک شده و قطعا هلاک شده است و خود لسان این روایت لسان تهدید است که شما فقط این آیات رو بگیرید و از این به هیچ نهوه تجاوز نکنید قبل از اینکه من این روایتی رو که میخوام عرض بکنم بگم برای عزیزان در خود سوره مبارک توحید هم باز روایات دیگری آمده که چگونه ما این سوره رو قراعت بکنیم حضرت سرمونم به همون گونه که مردم این رو قراعت میکنن شما اون رو قراعت بکنید و همون نحوه طبعاً که مردم این رو برداشت میکنن همون نحوه برداشت رو داشته باشید و روایات دیگری هم در این زمینه آمده یکی از روایاتی که در اینجا ما مناسب است که بگوییم خب از خود کتاب شریف نهج البلاغه ما این رو ازم کنیم که کامل این روایت رو بسندن مرخوم شیخ صدوق هم در توحید این رو این خطبتال اشباه آقا امیر المحمدین علیه السلام هست که خطبه شماره نود است که خود مرحوم سید رزی تعبیر میکنن من الخطب. این خطبه از خطبه های بسیار جلیل القدر قدر هست و از اجلای خطب نهج براغه هست که خطبه بسیار عالی و مشهوری است که از کردم خود مرحوم شیخ صدوق هم آورده این خطبه رو در این خطبه داره که خود مسعدت ابن صدقه از آقا امام صادق علیه السلام نقل میکنه که آقا امیر المؤمنین خوشبه بالای بولای منبرکوفه که یک فردی آمد خدمت حضرت و ذالکه ان رجلن اطا و فقار لهو یا امیر المؤمنین صف لنا ربنا لنزداد لهو خبن و بهی معرفتن پروردگارت رو برای ما توصیف بکن خصوصیاتش رو بگو شاید به همین نحوه که آمده از چه خرخ شده چگونه از کیفیتش رو بگو تا ما محبتمون به خدا بیشتر بشه داره که اینجا آقا امیر المومین فغذب علیه السلام حضرت بسیار ناراحت شدن و نادا از سلات ندای سلات دادن که همه جمع بشن بعد مسجد همه مردم در مسجد پر شدن به حدی که دیگه مسجد مملو از افراد شد حضرت بالای منبر رفتند. فسعد المنبر و مغضب متغیر اللون حضرت غضبناک بودند به حدی که رنگ چهره برفروخته شده بود بعد شروع میکنند حضرت فرمایشاتی رو دارن تا به این عبارت میرسن فلذر ایها السائل نگاه بکن ای کسی که سوال پرسیدی فما دلک دل القران علیه من صفته هرچی که قرآن از صفات خداوند متعال مطال بیان کرده فعتم به, به همون تمسک بکن و استزع به نور هدایت با همون نور هدایت پیدا بکن و از همون نور هدایت بهره بگیر و با کلف که شیطان و علمهو من ما لیسه فی کتاب علیه که فرزو و لا فی سنت النبی صلی الله علیه و علیه و علیه و عیمت الحدا فکل الى الله سبحانه اون علمی که شیطان اون علم رو به تو تحمیل می کند تو رو به تکلف به دست آوردن اون علمی اندازد از تو می خواهد اون رو به دست بیاری در حالی که از اون اثری در قرآن و در سنت رسول خدا و عیمه حدا علیه مسلم نیست این رو واگذار بکن علمش رو الله سبحانه و این که منتها حق الله علیک این منتهای حق خدا بر تو این است که اون چیزهایی که خدا نفرموده در مورد خودش تو در مورد اونها تفکر نکنی و اون رو واگذار بکنی به خدا و علم بدان ان راسخین فلعلم راسخین در علم کیا هستند همون الذین اغناهم عن اقتحام صدد المزروبه دون الغیوب الاغرار و به جملت ما جهل و تفسیره من الغیب المهجوب این راسخین در علم با این صفات فمدح الله تعالی اعترافهم بالعجز خداوند متعال مدح کرده اعتراف اونها رو به عجز ان تناول ما لم يحیط بهی علما از اینکه وارد چیزی بشوند که علمی به اون ندارند و سما ترکه تعمق فی ما لم يکلف البحث ان کنهی رسوخا خداوند متعال انقدر اینها رو متح کرده و چون اینها ترک کردن تعمق رو ترک کردن تعمق رو در اون چیزهای خداوند متال اونها رو مکلف نکرده به بحث در اون خداوند متال انقدر اینها فهم هستند اهل درک هستند اهل علم هستند این ترک کردن اینها تعمق رو خداوند متال نامیده ها و ما تر کهم التعمق فی ما لم یکلف هم البحث عن کنه رسوخا خدا چون اینها فهمیدهاند که در اینجا عقل راه ندارد در اینجا جای عقل نیست این رو خداوند متعال نامیده رسوخ و اینها راسخ در علم هستند فقط علا ظالب تو هم به همین اکتفاق بکن یعنی اونهایی که اهل فهم هستند اونهایی که اهل درک هستند اونهایی که به تعبیر قرآن راسخی نفل علم هستند علم در قلوب اونها رسوخ کرده به درجات والایی از اندیشه فکر رسیده اند اینها کسانی هستند که فهمیده اند که نباید در مورد خداوند متعال اینها در کنه خداوند متعال در صفات خداوند متعال که مربوط به کیفیت خداوند متعال هست در آنچه که خداوند متعال سخنی از اون به میان نیاورده اینها تفکری بکنند و اینها وارد این بشوند و اینی که شما به کیفیت خلق پرداخته اید ف... گفته اید که خب خداوند متعال چگونه طبعا خلق کرده باید چیزی باشد و از وجود خودش خلق کرده به کیفیت خلق پرداخته اید به کیفیت خداوند متعال پرداخته این اینها ناشی از عدم علم، عدم فهم و عدم نفوذ علم در قلوب هست لذا کما که, که دیدیم در این خطبه ای اشباح آقا امیرالمؤمنین هم حضرت ترک تعمق رو ایشون ممدود دانستند و متعمقین رو مورد ذم خودشون قرار دادند لذا اون چیزی که از روایات مختلف در روایاتی که آمده در باب عدم تفکر در خداوند متعال آمده که الله تفکر نکنید فی خلق الله تفکر بکنید آن چیزی که خدا نفرموده به خداوند متعال نسبت ندهید خب همه این روایات و لسانهای مختلفی که در مورد تعمق آمده و روایات دیگر اینها ظهورش در مذمت تعمق است لذا اگر این آقایون میخواهند خودشون رو متعمق بنامند مانعی ندارد اما اینها مذموم است و ناشی از قلت فهم است و سلام علیکم و رحمت الله و